ای فروغ ماه خسن از روی رخشان شما آب روی خوبی از چاه زنختان شما عزم دیدار تو دارد جان برلب آمده بازگردد یا برایت چیست فرمان شما کس به دور نرگست ترفی نبست از آفیت به که نفروشند مستوری به مستان شما بخت خابالود ما بیدار خواهد شد مگر زن که زد بردید آوی روی رخشان شما با سبا همراه بفرست از رخت گلدستهی بو که بویی بشنویم از خاک بستان شما عمرتان باد و مراد ای ساغیان وزم جم گرچه جام ما نشد پرمی به دوران شما دل خرابی می کند دلدار را آگه کنید زین هاری دوستان جان من و جان شما کی دهد دستین قرز یارب که هم دستان شبند خاطر مجموع ما ظلف پریشان شما دوردار از خاک و خوندامن چو بر ما بگذرید که در این ره کشته بسیارند قربان شما میکند حافظ دعایی بشن و آمینی بگو روزی ما باد لعل شکرفشان شما ای سبا با ساکنان شهر یزد از ما بگو که ای سر حق ناشناسان گوی چوگان شما گرچه دوریم از بساط قرد هممت دور نیست بنده شاه شمایم و سناخان شما ای شهن شاه بلندختر خدا را هممتی تا ببوسم همچو اختر خاک ایوان شما